حکایت یکی از ملوک عرب متعلقان دیوان را فرمود که مرسوم فلان را چندان که هست مزاعف کنید که ملازم درگاه هست و مترسد فرمان و دیگر خدمتگاران به لحب و لعب مشغولند و در ادای خدمت صاحب دلی بشنید و فریاد و خروش از نهادش برامد، پرسیدندش چه دیدی، گفت مراتب بندگان به درگاه خداوند تعالا همین مثال دارد، دو داد اگر آید کسی به خدمت شاه، سیم هر آینه در وی کند به لطف نگاه، مهتری در قبول فرمان است، هر که فرمان دلیل هرمان است هر که سیمای راستان دارد سر خدمت براستان دارد